کتاب افسانه های تنبلها نوشته محمد رضا شمس گوینده سپیده زیایی ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسانه به مدیریت محمد جواد بوستانی یکی بود یکی نبود که بود غیر از خدا هیچ کس نبود قصه بیخیال پیرزن پسر جوانی دوش که تنبل و بیخیال دست به سیاه و سفید نمیزد روزی پیرزن بهش گفت شو بر دنبال کار جوان گفت اگه خدا بخواد خودش میده پیرزن گفت برو کار کن اگه خدا بخواد میده یعنی چی ولی جوان همیشه همین جواب تکرار میکرد. یه روز جوون لب آب نشسته بود. شروع کرد به کاویدن خاک. دیدین با یه وقت کنار دریا کنار آم هستیم. که چوب برمیداریم خاک رو رو میکنیم. پسر جوانم مشغول این کار بود. یه دفعه دید که یه زنجیری از تلا از زیر خاک بیرون اومد. زنجیری کشید هف پر از تلا زیر خاک دید که به گردن هر کدوم زنجیری از قضا مردی جوونو می رو میپاید و خوم رو میدید جوان به خونه اومد و به مادرش گفت آره مادر من هفت خومه تلا پیدا کردم مادر گفت چرا اومدی اینجا بلندش رو بریم بیاریم خونه جوان گفت ای مادر اگه خدا بخواد خودش میاره از همین سراغ خونه خالی میکنه چه کاری ما زحمت بکشیم مادر گفت چی داری میگی بلندش رو بریم اما جوان حرفای مادرش رو نشتیده گرفت. مردی که به دنبال جوان آمده بود وقتی حرفا رو شنید با خودش گفت چنا مادرتو به ازاد بشونم که حز کنی حالا معلوم میشه خدا میخواد یا نمیخواد رفت به سراغ خومها همین که سر خومها رو برداشتید همه برد زنبور اصله با خودش گفت عجب کلای سرم گذاشت این جوون. حالا که اینطور خومها رو میبرم از روزنه خونشون خالی میکنم شب که شد مرد خومها رو یکی کی رو دوشش کشید و برد از اون روزنه خونه پیرزن خالی کرد. صبح که پیرزن از خواب بیدار شد مات و محبود موند. از کف و اتاق تا سقف پر از طلا بود. پسرم راست میگفت اگه خدا بخواد، خودش میاره. فردای اون روز جوان به مادرش گفت صد تومن بده مادر من برم یه دست لباس بخرم. مادر صد تومن به جوان داد و جوان به بازار رفت. در بازار دید یه جمعی دنبال گربه میگردن میخوان گربه رو بکشن جوون پرسید موضوع چیه گفت که آره میخوان که این گربه رو چون دزدی کرده بکشنش جوون گفت نکشینش من 100 تومانی گربه میخرم گربه رو خرید و به خونه رفت پیرزن گفت لباس خریدی گفت نه من این گربه رو میخوان بکشم به این قیمت خریدم فردا که شد دوباره 100 دیگه گرفت رفت بازار دید که میخوان یک کبوتری رو بکشم مردم بعد گفتش که بابا موضوع چیه؟ گفت این کبوتار کسیف خونه ما رو کثیف کرده. جواب بابا نکشنش. من اینو صد تومن میخرم کبوتر رو دوباره برد خونه و مادرش گفت من این کبوتارو خریدم به این قیمت 100 تومن. فردا که شد دوباره 100 تومن دیگه گرفت. ست تومن گرفت و راهی بازار شد، رفت دوباره دید یک جعمی میخوان یک مار موزری رو بکشن بعد گفت نکشینش نکشی این ما رو بدین به من من میخرم از تو پذیر قبول کردن و جوون ما خرید اما مار فرار کرد پسرم دنبال مار به راه افتاد در وسط راه مار به حرف درآمد تو منو نجات دادی جوون حالا من تو رو پیش پدرم میبرم که پدرم پادشاه های ماراست هرچی به تو داد قبول نکن الا انگشتری که زیر زبانش داره جوان گفت باشه نزد پادشاه مارها رفتم مار جریانو تعریف کرد پادشاه مارها از جوان پرسید خوب بگو ببینم چی میخوای جوان گفت انگشتری که زیر زبون شماست پادشاه انگشتر از زیر زبونش بیرون کشید و به جوان داد جوان به خانه برگشت از غذا اون انگشتر انگشتری حاجت یعنی هر کس هر حاجتی داشت اگر از انگشتر میخواست براورده میشد یه روز جوان رو به مادرش کرد و گفت مادرجان من دختر پادشاه رو میخوام مادر گفت آخه پسر یه لاغبای من تو چطور به خودت اجازه میدی که حرف دختر پادشاهو بزنی جوان گفت همون که گفتم من دختر پادشاهو رو میخوام حالا خودت میدونی؟ مادر که دید اصرار است. یه روز به شهر رفت اما جرأت نکرد حرفی بزنه روز دوم هم همین روز سوم بود که حوالی قصر اونو دیدن بردنش پیش پادشاه پادشاه پرسید چی میخوای پیرسن گفت قضیه از این قراره پسرم دختر شما رو میخواد پادشاه لبخندی زد و گفت باید ببینم دختر من چه نظری داره دخترش رو احضار کرد گفت پاشو بیا همین که پادشا پیرزن رو با دختر در میان گذاشت دختر جواب داد که اختیار من در دست شماست بدر. اما اگر پسر پیرزن میخواد با من ازدواج کنه باید دوتا خونه بسازه یکی برای من یکی برای خودش با یک خشت طلا و یک خشت نقره پیرزن که این حرفو شنید رفت به جوان گفت از این تصمیم بگذر که نمیتونی چنین قصری بسازی. جوان گفت مادر در نخور که من از این انگشتر هر چی بخوام برآورده میشه. اون وقت از انگشتر خاص دو تا قصد با یک خش طلا و یک خش نقره آماده کنم. خبر پادشاه رسید که قصرها آماده است. پادشاه که این حرفو شنید دختر را به عقد جوان درآورد. از قضا پادشاه کشور همسایه اومد به اون شهر رو عاشق دختر شد. همین که به کشور خودش برگشت به فکر افتاد که دختر رو از آن خودش کنه. پیرزنی بود که این کار از دستش برمی اومد. شاه پیرزن و احزار کرد. پیرزن گفت به هر ترتیبی که شده دختر رو میارم. اما فعلا قدر پول میخوام. پادشا قبول کرد پیرزن به راه افتاد و لنگون لنگون خود رو به شهر رسود کم, کم به قصر راه پیدا کرد و زیر پای دختر نشست جوان هر روز به شکار میرفت و شب برمیگش پیر پیرزن که داروی بیهوشی با خودش برده بود یه روز دختر رو بیهوش کرد و انگشتری که در اختیار دختر بود از زیر زبونش بیرون آورد بعد حاجتش و خواست و دختر رو بخورد جوان که به خانه خودش برگشت از دختر اثری سری ندید. کبوتر به حرف اومد و گفت پیرزن دختر رو برد. اما قصه نخور. من و گربه میریم و انگشتر رو میاریم. گربه بر بال کبوتر نشست و به کشور همسایه رفتند. پادشاه جوان اون کشور عروسی رو انداخته بود همه جا جشن و سرور بود پیرزن هم که گربه را دید شنخت چوبی برداشت و که گربه را فراری بده که کبوتر اومد و پرپر پر زد و چراغ خاموش شد چراغ که خاموش شد گربه پنجول انداخ روی سینه پیرزن و انگشتری را از زیر زبونش بیرون آورد انگشتر را آوردن و به جوون دادن جوون. حاجتشو خواست و توی چشم به هم زدن دختر با تخت و بارگاهش اونجا حاضر شد قصهٔ ما به سر رسیم.